بسم الله الرحمن الرحیم از سلام دارم و خیرمدن محصر مبارک حجار نامی نماینده ولی قدید استان سیستان و بلوچستان و منونو سپاس گذارم از شما جای و اما اینطوری خوبه که که از میز می‌خوریم تا می‌شود. اگر از سمت دیگر، اگر از سمت دیگر، اگر از و صورت تعبیری شده است. بتونیم خدمت شایسته و مناسبی برای نظام و محبتی اسلامی ملت باشیم. خیلی خیلی خدمت و هیئت هم راه و کوزوگانی که با داریم خدمت عرض که داریم می‌خوام که در چابهار تشریف داشتید و از همدیگر برنامه ها و برخورد جلسات مفید و موثری تو کردن و حتما از حضور و و برنامه های شما همه مدیران در خدمت راهنمایی ما هستم خیلی خیلی خیلی بسیار بسیار برنامه که برای امروز انجام شده هست که با عزیزان در واقع مدیران منطقه عزیزانی کورینیز هستند، مدیران منطقه ما و این اعضای سازمان هستند که تلاش ها و زحماتی رو که در نام خاید کارهایی که انجام شده حاصل زحماتی این عزیزان هست اگر که راه های رفتنی بسیار بسیار زیادی پیش رو ما مماین این ایزان هم همه تلاش خودشون رو در این صاحبها و کار گرفتن و به حال تا آنچه که ملاحظه خارید کرد حاصل زحماتی بزرگ بارن من خیلی مختصر دوستان رو معرفی می کنم به حوزه های فاریتی ساطمان رو و بعد از اون یه مختصری از به کار خاری کرد انجام دادن و حال های نگاه هایی که در منطقه امروز پول داره و بعد برای اینکه بتونیم از زمان مدثر استفاده رو بکنیم ون مط های نظی رو میشنیم و من شما اعرض بکنم کنمم رو از بخش اتفهایی انجام شده خواهیم داشت. برنا ما به شر بود که ارزی مدیران هم سحبت به فرمان مونتا من از همشون نوذ خواهی میکنم و جدید که میخوایم زمان ما تانماز ظهر هستیم میخوایم حداکثر استفاده در رسوط رااجاب بکنیم. من از طرف حاجه آقا شما قول میدم که انشاءالله در سفر بعدی جلسه مصروفایی که حرفای شما رو بشنمید رو حتما برناموزی خواهی کرد و حاجه آقا قولش رو حتما دو ما انشاءالله خواهند خدمت شما ارز بکنم که جا. حالا من معمول نخات میگم منت اگر جا مونده بود دوستان در قایان هم باز سر میکنم استفاده کنم منطور رو فیلم بیدی که پناه اقتصادیمون هستم با حضور در حوزه اقتصادی ما که بحث های سرمان بحث تجارت و به هم در حوضه ما هم توسی توسی تجارت و توسیه تجارت و بازرگانی بحث های رو انجام های که. ما طبیباً عمل بسیار خوبی در سالهای گذشته و خصوصاً این سال کردیم. استهزار دارید که هر منطقه‌ای برای بوجه خودش یک سهمیه یک حالای تجاری داره این کالای تجاری در واقع بوجه مناطق هست. در طول در واقع گذشته من آزاد معمولاً به دلیل زرف های ساختی که وجود داشته و حالا بندر هنوز به نبوده بخش ای از این سهمیه جزمه می شود. ما 500 میلیون دلار سهمیه وارد کار از منطقه داریم که عوالزش رو منطقه دریافت میکنه و این میشه شه بوچه منطقه در سالهای گذشته خب این عدد وقت به 500 نمی رسیده تا 400 ملیون سه دفترین بوده ولی سال قبل از اینکه ما بیاییم عدد بوده و گاهن هم کمتر بوده وقتانه در دو سه سال اخیر ما در سال 96 بین عدد رو کامل جذب کردیم 97 به جایی 451 میلیون دلاری سهمیه داشتیم 850 میلیون دلاری به سهمیه سایر رو هم خرید کردیم و سال 98 که الان خدمت شما هستیم همین الان سهمیه 451 میلیون دلار ما تقریبا تمام شده اصل 340 تا جذب شده 500 تا دیگه 50 هم هم خالص تو انبار داریم و 20 تا هم در ابتدای کار از سایر مناطق صنعتی رو خریدید معنیش این هست که منابع درآمدی ما در بوزه خوب خواهد بود و بوزه بازرگانی و توسعه تجارت ما مشترکن با یک تسیلگری و روانسازی که انجام دادن های خوبی رو فارس شدن دو پار بو بوزه دیگر سرمای بزاری و سرمای بزاری و سرمای بزاری دیگر این معاونت با گذاری متمرکز کنن و این ها رو فعالیت های مجموع تولیدات منتقه در سال 92 و دو میلیارد خوانا در سال نود در سال نود و شیش این هدف به هزارو هشتاد سه میلیارد عملیاتی رسیده که پ پنجاه هشتاد و شیش پنج هزار هشتاد میلیارد تومان ثبت گمرکی داره یعنی ما از 20 میلی 50 میلیار به 500 میلیارد بیش از 10 برابر و عملیاتی که در واقع در منطقه عمل شده بیش از تقریبا 20 برابر عمل کرده ارزش تولیدات داشتیم در سال 97 متاسفانه با این شرایط اقتصادی که پیدا شد و بحث ثبت سفارش و این نوسانات ارزی یک افت شدیدی رو ما در تولید داشتیم مجموع قراردادهای سرمایه‌گذاری که در سه سال گذشته در منطقه منعقد قد شده به لحاظ مبلغ سرمایه گذاری و به لحاظ تعداد قراردادها از مجموع قراردادهای ده سال قبل از اون بیشتر هست و این یعنی که ما در حوزه اقتصادی یک شکوفایی و یک رشد بسیار مناسبی رو در دور جدید در منطقه آزاد چابهار تجربه کردیم دلیل اصلی این تحولات ها شفافیت سیستم و سرعت بخشیدن به فعالیت ها بوده این ما هر آنچه که نام مشخص بوده و در اختیار فرد بوده برای تصمیم گیری رو تبدیل کردیم به بخش نامه به دستورالعمل به ضابطه و شفاف و روشن هم اطلاع رسانی کردیم و این باعث شده که بر حال سرعت فعالیت ها در منطقه افزایش پیدا بکنه در حوزه سرمایه گذاری بزرگترین خدمتی که انجام شده و خب هم صدای خیلیا رو در آورده و هم خیلیارو در واقع مشتاق و علاق به منطقه کرده بحث نوع قرارداد های سرمایه است که ما الان منقد می کنیم در گذشته قرارداد که منقد می شده اختیارات سازمان کاملا به سرمایهگذار منتقل می شده و این کار می کرده یا نمی کرده یا بر حالال فعالیتش رو تغییر میداده هیچ سازمان هیچ کنترلی روش نداشته و اگر هم میخواست قراردادی رو فصل بکنه یه فرایند چندین ساله که از ارزش خود زمین باید بیشتر می کردیم که قرارداد رو فصل کنیم بعد بر اساس ظرفیت های قانونی نوع قرارداد هامون رو به گونه تغییر دادیم که اگر سرمایه گذار در زمان مقرری که تعریف شده کارش رو شروع نکنه و یا به پایان نرسونه در اون برنامه زمانبندی که پیوست قراردادش هست خود به خود بدون مراجعه به کسی این قرارداد فصل شده است و حتی هیچ چیز واگذاری رو هم مشروط کردیم به پروانه بهرهبرداری برداری و استفاده ای از اون پروژه بنابراین اگر که کسی کارش رو تموم نکند بر اساس قرارداد هیچکونه حقی براش ایجاد نمی شود که بعدا ما بتونیم برای فسخش گرفتاری ایجاد بکنیم مهمترین ویژگی این نوع قرارداد این بود که سفت بازی و اون بازار سیاه و دلال بازی زمین رو کاملا از بین برده و کسانی وارد در واقع فرآیند سرمایه گذاری ما میشن که قطعا قصد سرمایه گذاری دارن و با روی برای تولید اومدن و برای تولید کننده بهتر از این که ما امکانات در اختیارشون قرار بدیم و زودتر به تولید برسن هم چیزی نیست اتفاقی که در حوزه سرمایه گذاری و تولیدات منطقه افتاده حاصل این دو سیاست بوده جناب آقای چاکرزی هم عضویت مدیره هستند و هم معاون فرهنگ اجتماعی گردشگری در حوزه گردشگری ما هم دوباره چهار تا مدیریت داریم مدیریت فرهنگی، مدیریت اجتماعی، مدیریت گردشگری و محیط زیست محیط زیست و اداره کار هم عنوان یک اداره زیرمجموعه این در واقع معاونت هست به جرعت میتونم بگم به در واقع گواه و شهادت خیلی از افرادی که حالا در منطقه حضور دارند نوع تعاملات سازمان و خدماتی که در سرزمین اصلی داره ارائه میکنه در این فصل کاملا متفاوت شده به این معنا که به عنوان اولین قدم و اینکه که ما پاسخگوی به جامعه پیرامون خودمون و جوامع محلی باشیم سندی رو با کمک دانشگاه تهران کار کردیم به نام سند مسئولیت اجتماعی این سند مسئولیت اجتماعی مشخص کرده که ما در ارتباط با جوامع محلی چه تکالیفی داریم و چه موضوعاتی رو باید بهشون بپردازیم سه تا محور اصلی رو برای ما اونجا تکلیف کردم بر مبنای مطالعه آموزش بهداشت و توانمندسازی در حوزه آموزش خدماتی که ارائه شده در دو حوزه است یکی کیفیت آموزش هست که زیر های آموزش برای کیفیت آموزش ما یک دبیرستانی رو شروع کردیم که من حضوران هم قبلا خدمت شما گزارشش رو ارائه کردم و واقعا یکی از بهترین کیفیت‌های آموزشی این منطقه است که ما این رو بندی کردیم برای روستاهای اطراف چابهار و هر سال آزمون برگزار می‌کنیم و از طریق آزمون از روستاها با سهمیه دانشآموز میگیریم که کلیه هاشون به صورت شبانه روزی اینجا تأمین میشه سال اولمون پارسال بوده که فقط پایه آخر رو یعنی بچه های کنکوری رو جمع کرده بودیم از سی نفر 24 نفر الان در دانشگاه های خوب کشور دارن درس می‌خونن. دانش آموزی ما داشتیم در اون دبیرستان که پارسال بعد از اینکه نتایج کنکور اومد و دانشگاه سنتی شریف قبول شده بود. به من می گفت که اگر شما این دبیرستان رو ران انداخته بودید و منو نیابرده بودید من با داایی میرفتم سلوی کارگری می کردم. امسال همون دبیرستان 75 نفر دانش آموز در پایه دهم ده گرفته و سال دوباره امسال کنکور بر سال بعد چون دیگه از ابتدا شروع کردیم متوسطه دوم هم رو همه پایه ها رو داریم میبریم جلو و ان ارادمون برین بر این هست که در کنار این دبیرستان پسران دبیرستان دخترانه رو شروع بکنیم برای اینکه سرعت بدیم از زیرساخته ها هم درست استفاده بکنیم امسال اولین به صورت پایلوت اولین دبستان رو هم در یکی از روستاها تحت در واقع حمایت کیفیت آموزشی این ایران شروع کردیم که کل این زنجیره رو کامل بکنیم این برای تربیت نیروی انسانی برای جلب مشارکت جوامع محلی و برای تقویت حوزه آموزش اقدام ارزشمندی است که در حوزه کیفیت انجام شده سال گذشته 13 مدرسه نیمه تمامی رو که سالها رها شده بودند یا توسط خیرین یا توسط خود نوسازی مدارس شروع شده بود رو ما مسئولیت قبول کردیم منابع تخصیص دادیم و 83 کلاس درس در واقع امسال پایان اول مهر ماه به بهره برداری خواهد رسید که باز هم سال بعد همین موضوع ادامه داره برای سال 98 هم یک مجتمع آموزشی شبانه روزی رو باز به صورت مشارکتی با خیرین پیش کردیم که 50 درصد سازمان و 50 درصد خیرین در بخش دشتیاری که محرومترین بخش کشور در حوضه آموزش هست پیشبینی کردیم انشاءالله فراهم بکن در حوزه بهداشت بیمارستان رو خدمتتون نشون دادم حداقل بر حال اقدامی بوده که سازمان میتونست انجام بده البته که در بحث تجهیز بیمار... آی یو بیمارستان اماملی که الان قوی ترین و مجه هسترین آی جنوب شرق کشور هست توسط سازمان انجام شده. در بحث سایر تجهیزات و امکاناتی که بیمارستان نیاز داشته سیستم های سرمایشی توسعه فضاها هر سال کمک کردیم. امسال هم در وقته منابع 97 بخشش رو بخشش رو از 98 مسبب کردیم. یه دستگاه انجیوگرافی هم خریداری کردیم که دیگه تقریبا مردم برای بحثای بیماری هاشون در حوزه قلب حداقل در جنوب مشکلی نداشته باشن برنامه های خیلی مفصلی دیگر رو در بحث مرکز جامعه سلامت با خود علوم پزشکی و بحث های پایش و در واقع پیشگیری هایی که در حوزه بهداشت دارن وزارت بهداشت انجام میده برنامه های مشترک مفصلی رو حتی در حوزه بیماری های خاص مخصوصا و همینطور بیماری در واقع لاحلاج مثل آقا که در این در از این نمطور شایده یک کار بسیار خوب و مهمی رو با کمک و رهبری و خود دودت زارتی به داشت با حمایت رو سازمان شروع کردیم در حال انجام است. در گوضه توانمنسازی آجابا امروز با افتخار رو ارز میکنیم که سوزندوزی زمان بروش در همه محافظ و مجالسی در این کشور داره انجام میشه بدون حتی تلاش ما امروز حضور داره من هفته گذشته خبر رو در ایک از ملی میلی میدیدم یک رو نمایی از فیلم قصر شیرین قصر شیرین ما نمیدونیم چه اصطباطی ما مادره ما نمیدونیم موضوع افرادش هیچ بوده ما نبوده موقع تا از هنرمندهایی که در اون جلسه حضور داشتن با لباس بلوچی باسه سوزن سوزندوزی زمان بلوچ در اون جلسه حضور پیدا کردن معنای این اون چیزی بوده که ما رو در اول هدف گذاری کردیم بحث برندین و بحث توسعه بازار سوزن برای ایجاد اشتغال برای زنان بش. همه زنان زنانولوش قبل از اینکه خواندنون نوشت اداد بگیرن حجااز سوزن توزی در و سوزن این یعنی که بدون هزینه آموزش بدون هزینه کارگاه بدون هزینه داری ما شغل ایجار کردیم و تخصصه بازار کاربدیم.یه همضرواها سیاستی بوده که تقریبا تمام میمانان ما در این سه سال بعد از وجود و مندرند و صد در سر تردید چون ما هیچ قدیه غیر از سوزندوزی زنان بروش به هیچ مهمان داخلی و خارجی مهدی و حتی شخص رئیس چونگون غیر از سوزندوزی چیزی در واقع اینجا هدیه نشده تمام مهمانان و های خارجی که الان همه اینها پیامهایی رو شدن در واقع سفیرانی شدن برای توسعه و ترمیج این سند و الحمدالله امروز ما صد نفر خانم بیمه شده که آموزش دیدن در منطقه برگزار شدن ما کمک از برای بین هشدار مشخصه در واقع بین گزار رو ما داریم در حوزه تابونی ها کاری انجام شده خاطرم هست اولین نماشگاه بین المللی که این سندگران رو بفرسون هیچکس حاضر نبود بره ما پول بلیط و اقامت و غرفو و همه در واقع پولتجیریشونه دادیم که برید اونجا در نماشگاه بکنید یک سالونیم از اون نماشگاه دو سال گذشته اجابا امروز سالیانه در نماشگاه های بینون مدیبی بسیار زیادی همون جمع حاضر میشن شرکت میکنن و به ما نمیگن این یعنی تمام منسازی این یعنی توسعه بازار که خب کارایی هست که همه در موضع فرنگ اجتماعی انجام شده و ارزشمند جنبای دوتور خزاینی معامل فنی و عمرانی من هستند و بار زیرساخت و مسئولیت و حال آماده سازی بستر برای هوزه اقتصادی و هوزه فرنگی زحمت این بزرگوار هستند. عرض کردم خدمت شما که ما از سال نود پنج تا سال از نود تا نود و پنج مجموع کارهای عمرانی که در منطقه ما موجود داریم 67 میلیار میلیارد بوده. و از سال نود و هفت و در باقی شروع کردیم به کار نود و هفت که هستیم در حال حاضر صد و سی و شیش میلیار قرار داده سرمایه گذاری داریم در منطقه و خدمت شما عرض بکنم سد و شست سه چهار ملیار تومن هم پروژه در پیمان یعنی در فرایند مناقصه یعنی سی میلیارد، ملیار تومن کار عمرانی رو جنابای خزاینی و همکارانشون در حوزه عمران که چهار مدیریت دارن در حال انجام و برنامهریزی دارن مهمترین مسئلهی که در حوزه عمران ب... صد درس داشت رو ما انجام میدیم. حوزه عمران، حوزه آن چه که اتفاق می افتد رو بخش خصوصی انجام میده. حوزه عمران هرانچه و فرهنگی هرانچه که انجام میده، هایی هست که سازمان داره انجام میده. این سهم در واقع عمده ما بودجهمون درآمد هزینه است. درآمد از حوزه اقتصادی میاد و هزینه هامون یا سرمایه گذاری در حوزه فرهنگی اجتماعی و حوزه عمرانی هست مجموع درامت ها بوجه ما در سال نود و پنج سد و بیست میلیار تومن بود بودجه سال نود هشت ما هفت و نود میلیار تومن هست یعنی تقریبا هفت برابر ما رشد درآمد و منابع داشتیم در منطقه و اینها همه همه است که این عزیزان در این سالها کشیده خدمت شما ارز بکنم که در حوزه عمران به جرئت میتونم بگم که اون نمودار چیز رو بیارید آقای یوسفی که ترها رو نشون میده اگر اسلاید بعدی بهتر اینجا رو این این گویای زحمات حوزه عمران ما هست فقط در بحث آماده سازی اراضی ترهای تفصیلی و مطالعات اولین با پای ترین و در واقع سندی که شما برای کار عمرانی نیاز دارید تره جام است و تره تفصیلی و ترهای آماده سازی که بتونید در واقع کاربری و فعالیت عراضی رو مشخص کنید از سال هشتاد و پنج،, هفتاد و پنج تا 85 کل عراضی که براشون تر تهیه شده هزار و هکتار بودن سال 85 تا 95 هیچ گونه طرحی در این سازمان یعنی 10 سال تهیه نشده و سال 95 و, پنج و ن... تا 97 که ما خدمت عزیزان بودیم 9600 هکتار طرح تهیه شد آقا در حوضه ترهای آماده سازی ارازی که دیگه بیس سوا هست 75 تا 85 1069 هکتار یعنی کل زمین هایی که در منطقه در 10 ساله اول منطقه آماده شده 1069 هکتار بوده از سال 85 تا 95 هیچ ترها آماده سازی تهیه نشده در منطقه و از سال 9 90... پنج تا 98 در این دو سال اخیر سه سال اخیر ما 516 هکتارطر آماده سازی داشتیم که 500 هکتار از این رو الان آماده سازیش رو شروع کردیم این در حالیه که در دهه اول از اون هزار هکتاری که تحت تهیه کردن 800 هکتارش هکتاررش 8۶ هکتارش آماده سازی انجام شده 6 هکتاررم در دهه دوم منطقه انجام شده و در سه سال اخیر 500 هکتار در واقع کاری هست که همکاران ما زحمت کشیدن و انجام دادن خدمت شما ارز بکنم در حوضه تخصصی ترهای موضوعی ترهای گردشگری پارک ها امکانات و خدمات زیر ساختی که مردم نیاز دارن این مجموع پروژه های 90 تا 95 هست ایفتاد تا پروژه 67 ملیار تومن کار 90 تا 95 هست خدمت شما ارز بکنم پروژه های در حال اجرامون و کارهای که کردم خدمتون در حوزه عمران انجام میشه مجموعش اش هایی است که ترهای زیربنایی و اساسی است. در حال حاضر دو تا پارک برای رفاه و خدمات عمومی داریم. آماده می‌کنیم پارک لیپار، مجموعه گردشگری لیپار هست که مجموعه خدمات رو الان پیمانکار داره کار می‌کنه تا برج 11 انشاءالله شاءالله به بهره‌برداری خواهد رسید. پروژه بعدیمون پارک بلوچ هست با حدود 80 هکتار که بین اتصال بین پیکره مسکونی و صنعتی هست. در ما انجام مناقصه است ان به زودی مناقصه اش برگزار بشه و کار رو شروع بکنه در همین طور مجموعه ورزشی گرد... رو شروع کردیم با مساحت حدود تقریبا 40 هکتار که اولین پروژهش زمین کریکت هست میدونید کریکت خواستگاهش چابهار هست تیم ملی کریکت فقط یک نفرش از چابهار نیست تمام اعضای اصلی تیم ملی کریکت ایران از هست. چابهار هستن هم برای همین اولین زمین استاندارد کریکت ایران رو ما داریم در اینجا مناقصهش رو برگزار کردیم پیمانکار در حال تجهیز است که ان کارش رو شروع بکنه بقیه مجموعه هم طراحی شده و در حال مذاکره با سرمایه‌گذاران دیگری هستیم که انجام میشه. خدمت شما عرض می‌کنم که مجموعه خانه فرهنگ برای توسعه و فضاهای فرهنگی و بستر سازی برای حضور جوانان در ها و در در فضای عمومی جامعه مجمع ای رو برنامه خانه فرهنگ به هر حال برنامه‌ریزی شده برای عمدتاً با محوریت جوانان هنرمدان ان شاءالله شروع ما مافیگه تاریفش بوده و امیدواریم تا مهلت دوستان به ما تحویل بدن الانم تقریباً بخش عمده کارش تموم شده بحث نماش و سازیش بوده ان شاءالله اینا هم تقریباً کمتر از یک سال هست هش مو حس فک می‌کنم این پروژه در واقع شروع شده تا به پایان میرسه سرعت فعالیت نو انزادت و جنس ساخت و ساز در منطقه های با و به معنی واقعی تغییر کرده یعنی مکانیزم هایی که حوزه شفافیت و برنامه در حوزه اقتصادی عرض کردن همون رو با همون کیفیت ما در حوزه عمران از جنس دیگری داریم یعنی شفاف کردن فرایندها، ها، زابط مند کردن، نحوه انتخاب بخواب واقعا ماجرایی بوده پیمانکار انتخاب کردن بخشوندهی از پروژه های ما پروژه های خرد بوده که زیر معاملات متوسط می‌اومده و قرارداد منعقد شده ما تقریباً حتی اگر امروز معامله متوسط و کوچیکی داریم گفتیم جمع کنید چند تا رو با هم بذارید و مناقصه بذارید که با یه فرایند کاملاً شفاف و در یک فضای رقابتی ما بتونیم به کیفیت خوبی برسیم یک روستا در منطقه آزاد چابهار داریم اونجا به نام روستای تیس 40 سال از عمر انقلاب گذشته و این روستا تا سال گذشته آب به آشامیدنی نداشته و این مایه شرم همه ی مدیران نیست که اینجا کار کردن و ما هم در واقع مسئولیت این کمکاری رو کمکاری مدیران رو که متاسفانه و متاسفانه در بسیاری از موارد این کمکاری ها به پای نظام نوشته میشه رو مسئولیت داریم و باید پاسخگو بودیم در اولین اقدام باقای استاندار توافق کردیم اختیارات حاکمیتی خودشون رو در این روستا تفویض کردن به ما به سرعت طرح ویژه‌ای رو برای این روستا تهیه کردیم بحث واگذاری اراضیش رو و سند دار کردن و تثبیت مالکیت مردم رو دنبال کردیم با یه مکانیزمی در مشورت با خود مردم و شورا و بحث بهسازی و آماده سازی و تامین زیر رو شروع, شروع کردیم ما سال گذشته آب رو به این روسلا وارد کردیم شبکه اصلیش رو اجرا کردیم تا بال حدود نزدیک به 200 تا انشاب هم واگذار شده یک توافقی رو باشون انجام دادیم که اونها تعریضشون رو انجام بدن که ما بتونیم معابر رو بازگشایی بکنیم هر معبری که بازگشایی شد ما خط انتقال آبش رو اجرا میکنیم و در واقع بعدش هم به حساسی معابرشون رو آسفالت و جدول گذاری و این اینهایی مشبق هم براشون گذاشتیم که هرکس خوب همکاری بکنه تحریزاش رو انجام بده با یه توافقی که با بانک حکمت انجام دادیم برای هر کدوم از این خونه ها پشت بومش یک پنل 5 کلو سولار سیستم میذاریم که الان فیلم کنم 60-70 تاشون هم نصب شده برق اداره برق هماهنگ کردیم قراردادی با اینها میبنده تقریبا مای 700 هزار تومان برای اینها بر اساس اون قرارداد درآمد ایجاد میشه که بخش اولش رو به مدت 3 تا 5 سال فکر میکنم متفاوت هست در واقع بانک حکمت قسطاشون رو برمی میداره برای اینکه پولش رو استهلاک بکنه و ما بقیش به مدت 20 سال درآمد این خانوار هست از این پنلی که براشون نصب میشه جنس کار مشارکتی که برای این روستا تعریف کردیم روی کرد و نگاه مردم رو نسبت به سازمان نسبت به مدیران و نسبت به منطقه تغییر داده و الحمدلله بسیار خوب و ارزشمندی رو به همکاران حال هم کاران ما باعث شدن که اثراتش خدمت ماندگار و در واقع عزت و افتخار به و سرزمینمون هست. خدمت شما عرض بکنم که در حوزه جناب آقای که پشت سیستم هستن مدیر روابط عمومی هستن و این تبلیغات ها و تصویرسازی های بیرونی کار ایشون هستی اگه با مجرد فوش میدن تخصیر ایشونه که درست گذارش عمل کرد نمیده احتمالا به ما فوش بده بیران جناب آقای محین حمله حملان الالو ترانزیت هستند. همونطور که استحصاب دارید در جا اصلی ترین معمولیت چهابهار بر اساس سند پوسیقی میزار معمولیت خدمت شما ارز بکنم هم در نقومت هست بندر شاید بهشتی با همین منطق شکلی رفته توسعه رو پیدا میکنه راهن چاقاها رو به سبخص با هم رو کرد تحریف و اجازهی که در اتفاق میفته اما در نقطه ورودی ما نیازمند یک سری برنامه ها و الازامات دو در منطقه بدلیل بندر فورتوآلشارقه و راهن هستی و به همین داریم معاونت حمل و نقل و ترانزیت معمولیت داره که به و فعالیت‌های حوزه در واقع حمل و نقلی ما را انجام بده ما برای اینکه بتونیم پوشش و در واقع امکان بهتری رو بر هم برای حوزه حمل و نقل و هم برای حوزه فعالیت‌های اقتصادیمون در حوزه سرمایه‌گذاری فراهم بکنیم طرح توسعه منطقه رو پیشنهاد کردیم خوشبختانه در دولت تصویب شده هزار هکتار منطقه که در واقع در به عنوان تنها منطقه آزادی است در دنیا که هیچ مرز رسمی ندارد و این یعنی یک در واقع جوک در ادبیات مناطق آزاد دنیا ما طرح توسعه محدوده منطقه رو دو سال هست پیگیری کردیم خوشبختانه در دولت تصریب شد لایحهش به مجلس رفته و در سفری هم که جناب لاریجانی ریاست محترم مجلس داشتن مذاکرات مفصلی با داشتیم بازدیدی از کل طرح داشتن و با اجرای این تهر شهر چابهار اولین شهر لوجستیک کشور خواهد شد شهر لجستیک به معنای اینکه تمام ابزار های حمل و نقل و نیازمندی های حمل و نقل و ترانزیت در این شهر فراهم خواهد شد فرودگاه بین المللی که خدمتون ارز کردم انشالله به زودی عملیات اجرایش هفته آینده شروع خواهد شد در کنار راهن، در کنار بندر و در کنار جاده ترانزیتی که وجود داره یعنی اینکه ما چهار ابزار مهم حمل و نقل و ترانزیت رو در یک نقطه داریم کمتر جغرافیایی در این منطقه وجود دارد که این چهار ویژگی رو با هم همزمان بتونه مهیا بکنه این پتانسیل و ظرفیت وجود داشته خوشبختانه با احتمامی که در دولت بوده و هم افزایی که صورت گرفته اینها به سمت سوئید رفتن که ما بتونیم اینها رو همه رو با هم مهیا بکنیم و انجام بدیم در حال حاضر دوستان هم خدمات بندری رو در حوزه بندر شهید کلانتری که متصل به منطقه است در این حوزه ماابت انجام میدن همه آنچه که حوزه بازرگانی و تجارت ما برای جذب بار و در واقع کالا به این منطقه انجام میدن یعنی پشتیبان حوزه اقتصادی هستند در فعالیت های امور بندری و خدمات بندری و تخلیه و بارگیری که اون عملکرد اقتصادی که دوستان در واقع همه جا ما اعلام می کنیم که افزایش درآمد داشتیم و اقدامات خوبی انجام شده بارش رو از عزیزان حمل و نقل و ترانزیت هست که برهاد زحمات خیلی زیادی رو کشیدن همینطور پروش های زیر رو دنبال می در این موضوع فرودگاه به نومدی بحث الهاق بنادر بحث تکمیل راه آهن و بحث تقویت زیرساخت ها مخصوصا در حوزه تیر پارک ها و خدمات لوجستیکی کارهایی است که در حوزه حمل و نقل انجام شده و تحولی رو هم الحمدلله در این سال ها ما در این حوزه داشتیم که به حال اثراتش تامین زیرساخت هست و خودش رو در فعالیت های اقتصادی ما نشون میده یعنی که اقتصاد حوزه اقتصادی و بازرگانی ما موفق هست یعنی حوزه حمل و نقل زحمات زیادی رو میکشه بعضی از معاونت های ما کار زیاد میکنن مونتاچون چون عدد رقمه هاشون خیلی جذاب نیست برای شنونده ها حقشون همیشه زایه میشه اینها از اون سنگ های زیرین آسیاب هستن که زحمات زیادی میکشن و کمتر دیده میشن چناباقای سلطانیفر مدیر کل حراستمون هستن در واقع مدیر یواشکی دیگه حالا بچه ها رو یه کارای اگر حراستی و ترافیکی و بحث امنیت و گارد منطقه رو زحمت میکشن انجام میدن معمولیتی ایشون هم در این سالها خیلی سنگین و سخت شده دلیلش هم حجم زیاد واظیت کننده و هیئت هایی است که ما در منطقه داریم هر هیئتی که وارد میشه به اختزای سطحش کار حوزه حراست ما کار بسیار سنگین و سختی است و البته خب مسائل پرسونلی و بسای داخلی که زحمت میکشند همکارمون جناب آقای دبیری هم از حوزه امنیت و حراست هستند حالا یواشکی اومدن تو این جلسه ما هم ندیدیم جناب آقای آبروش مدیر کل حوزمون هستند که باز هماهنگی ها و های دفتر جلسات و هماهنگی در واقع مدیران و معاونین رو زحمت میکشن انجام میدن معاون توصیح مدیریتمون که پشتیبانی و خزاندارمون هست برای اینکه ما هفته آینده مجمعمون باید برگزار بشه برای همه مجمع با اعضای مجمع و کارگروه تخصصی در تهران ناچار بودن امروز باشن خدمتشون نیستیم و همینطور جناب آقای حق دلم نمیبینم نیستن جنابای حق دل هم مدیر عامل شرکت سرمایه مون هستن که در این زمین دو بزرگوار رو نداریم جنابای اسدی مدیر سنایه مون هستن در حوزه سرمایه گذاری و در واقع صنعت من عرض کردم که زحمات این از چقدر زیاد هست اون فعالیت های اقتصادی مصطفایی که در حوزه سرمایه گذاری انجام شده و تولید زحمات عمدش گردن جناب آی اصدی و همکارانشون هست جناب آی دکتر چلندرید یکی از متخصصین و صاحب نظران حوزه فرودگاه هستند در کشور مدیر کل فرودگاه های مشهد بودن احتمال داره در اون زمان حضرت حضرتالی مشهد تشریف داشتید فرودگاه امام بودن و تعداد خیلی زیادی فرودگاه دیگه در دهه هفتاد هم یه چند سال سیستان بلوچستان مدیر کل فرودگاه های در واقع استان بودن با توجه به اهمیت پروژه فرودگاه و با توجه به ضرورت اینکه کار سری و تخصوصی میخواستیم انجام بشه ایشون رو از وزارت راه محمول کردیم به منطقه و به عنوان مشاوره در واقع بنده و مدیر در واقع اجرای و مجر مجری فرودگاه هستن که زحمات فرودگاه همه تمام و کمار مذاکراتش برنامه ریزیش گردن ایشون هست جنبای مهندس هستند. اون کارایی که در حوزه عمران و پروژه های عمرانی عرض کردم خدمت شما زحمت این بزرگوار و همکارانشون در حوزه فنی هستند های فنی ما هم جز همون مجموعه هستند که خیلی خیلی زیاد زحمت میکشن و کمتر دیده میشن جناب آقای دکتر بزرگزاده مدیریت غذا و دارو و بحث‌های بهداشت و کنترل و سلامت و برحال پروانه های بهداشتی صنعت رو و همه موضوعات مربوط به در واقع این حوزه ها رو انجام میدن همزمان هم زحمت دادیم بهشون سرپرست دانشگاه علمی کار بردیم هستن در بحثای محارت هم موزی و توان منسازی هم به ما کمک می‌کنن خدمت ها جای قاسمی هم که افتخار شاگردی داریم از های دور جناب آقای آ مدیر شهرسازی هستند اون بخش مطالعاتی که عرض کردن ما بخش اومدهش طرح که داره تهیه میشه و برنامریزی هایی که میشه در حوزه معاونت فنی و زیربنایی هست اون تا دستگاه در واقع مدیریت متولیش مدیریت در واقع شهرسازی هست که جناب آقای آسفی زحمت میکشن برمیگردیم به این طرف جناب آقای رئیسی کارشناس دفتر هستند اینجا با ما کمک میکنن و تقریبا بار مسئولیت حوزه دفترم نگردنه ایشون هست دیگه همیشه زودتر از ما باید بیاد و خیلی دیرتر از ما باید بره و جز افرادی که زحماتش کمتر دیده میشه جناب آقای رئیسی دوم دیگه شماره دو رئیس اداره کار ما هستن ما اداره کار به دلیل ضوابط و قوانین خاصی که داره و ضابطه کار میخواد و تسلط به قوانین کارگری مخصوصا الان که تولید افسایش پیدا کرده نیازمند این بودیم که یک نیروی رو از اداره کار که وزیر محترم کار اختیاراتش رو به ما تفویض بکنه بیاریم آی رئیسی رئیس اداره کار نیک شهر بودن ما ایشون رو مأمور کردیم ما آوردیم اینجا و اداره کار ما رو مسئولیت دارم بحث‌های قانون کار رو دنبال می‌کنن جناب آقای بلوچ مدیر بحر برداری هستن بحث نگهداری سیستم ها و به هر حال هایی که در حوزه شهری انجام میشه با کمک آقای صادقی هم خودت اعتکونی بده که زودتر معرفیتون کنیم این دو تا در واقع دو قلوهن آقای شهر آقای صادقی یه جورایی میشه شهردار منطقه یعنی خدمات شهری و در واقع بخشی از فعالیت ها رو انجام میدن جناب آقای بلوچ هم بهره برداری رو در واقع دنبال میکنن و انجام میدن جناب آقای میکولایی برنامه و بودجه خزانه دار و صاحب پوله خلاصه همه باید با مناسبت خوبی داشته باشن که بتونن هم ازشون اعتبار بگیرن هم تخصیص بگیرن و کارشون انجام ب된다 میشه مثل برنامه بودجه سرزمین اصلی که همه دستگاه دولتی مجبورن باش خوب باشن اینجا هم همه مجبورن با آقای میکولایی خوب باشن جناب آقای محبی مدیر پشتیبانی هستن. انصافا تحولی رو در حوزه پشتیبانی به خریدهای سازمان و نظم دادن به حزینه های ریز انجام دادن کم جایی رو شما سراغ دارید که برای خریدهای سالیانه خورد ریزشون برن به سمت مناقصه آی محبی تمام خریدهای خورد سازمان رو تجمیع کردن و به صورت مناقصه سالیانه خرید می برای اینکه که حال خیلی از ایراداتی که در سیستم ها معمولا در سیستم های اجرایی پیش میاد از همین حوزه هاست و این یک اتفاق و تحولی است که تقریبا در مناطق آزاد سابقه نداشته اولین بار جای دیگه هم من نشنیدم که این کارو بکنن و قابل در واقع تقدیر هست جناب آقای رزوانی جانشین حوزه فرهنگی هستن، مدیر فرهنگی حضور ندارن برنامه نمای فرهنگی رو این عزیزان زحمت میکشن و خدمات خیلی خوبی رو هم در هوزه فرهنگی که عرض کردم با جنابای چاکرزی کمک میکنن انجام جناب جنابای ریگی مدیر محیط زیست ما هستند مراقبت از محیط زیست مسئولیت ایشون هست برای اولین بار در این دوره جاقا ما تونستیم یک شورای محیط زیستی رو در منطقه انجام بدیم با حضور مدیران و متخصصان محیط زیست کشور و تمام پروژه هایی که اینجا شروع میشن پیوست های زیست مهیتیشون همینجا بررسی میشه مستقیما رسیدگی میشه و هم برای سرعت بخشیدن به فعالیتها و هم برای نظارت و کنترل ما بحث های محیط زیستیمون رو اینجا انجام میدیم جناب تخش مدیر بازرسی و ارزیابی عملکرد هستند در سازمان که ایشون هم از اونایی هست که یه جورای همکار آقای سلطانی فر هست و خلاصه میترسن همه ازشون جناب حسینی مدیر گردشگری و میراث فرهنگی مون هستند از مدیران حوزه میراث فرهنگی هستند به دلیل تخصص و دانش و که در اون حوزه داشتن معمورشون کردیم بیجا و کمک میکنن به ما در حوزه مسائل گردشگری و محیط زیست جناب آقای آبروش مجدد برادر اون آقای آبروش هستن مدیر امور اجتماعی ما هستن آقای میری کجا بود؟ آقای میری رو ندیدم ما اونجا دو نفر جاموندیم میخواستیم با آقای صادقی پیوند بزنیم جناب آقای میری هم مدیر خدمات بندریمون هستن همکار آقای میری بله گفتم که اینا همیشه سنگ زیریین آسیابون میمونن خودم هم اینجا جاشون گذاشتم. آی میرید در واقع مدیر خدمات بندریمون هستن در حوزه جناب آقای موین کمک میکنن و پشتیبان حوزه اقتصادی و بر حال که کرس کردم. برای اینکه دیگه واقعا حاجقا با باور بفرمایند که من عین واقعیت رو گفتم جا موندید که مشخص بشه شما سنگ زیرین آسیاب هستید و همیشه جا میمونید. جناب های آبروش رو می کردن مدیر امور اجتماعیمون مون هستن و بحثهای مربوط به جوامع محلیمون مون رو منسازی و بحثهای مسائل اجتماعی که خصوصا در هاشیه شهر چابهار الان در حوزه زنان داریم کار میکنیم، مسائلی است که در حوزه اجتماعی انجام میشه در حوزه ورزش هم اداره ورزشی داره امور اجتماعی ما که اقدامات خیلی خوبی رو انجام داده حمایت از تیم‌های ورزشی شهرستان ورزشکاران ملی که در واقع در منطقه حضور پیدا در سطح ملی پیدا می‌کنن ما از استان هر ورزشکاری هاجا که به سطح ملی پیدا بکنه، راه پیدا بکنه و ورزشکار ملی در واقع داد بشه ما در مسابقات و برنامه‌هایی که شرکت می‌کنن به عنوان اسپانسر حمایتشون می‌کنیم الان دو جوان از ایران شاید در تیم ملی میدانی هستند مورد حمایت سازمانند تیم ملی کریکت تمام ملی پوش ها مورد حمایت ما هستند تیم فوتبال ساحلی چابهار فار... سال گذشته به لیگ برتر راه پیدا کرده ها شدیم بحث موج سواری رو ما در واقع میدونید تنها نقطه در کشور که کار موج سواری میشهیم امکان موج سواری وجود داره. چابهار رمین و سواحل شرقی چابهار هست ما الان به مدل و الگو و برند موجسواری در کشور در واقع تبدیل شدیم امسال مسابقات انتخابی تیم ملی موجسواری کشور در چابهار برگزار شده سال گذشته از روستای رمین یک نفر رو ما به عنوان عضو تیم ملی حمایت کردیم مسابقات جهانی ژاپن رو شرکت کرده اینها مجموعه ای از در واقع فعالیت ها و اقداماتی است که همه رو همه این جمع و تعداد خیلی زیادی همکاری دیگه که البته سرجمشون در سازمان حدود 700 نفر و در پشتیبانی ها حدود 1100 نفر پرسنل در واقع در سازمان زحمت میکشن کار میکنند منتها مسئولیت و بار اصلی بر دوش این همین عزیzani هست که در واقع دور این میز هستن اما کسانی که زحمت میکشن و کار میکنن جمع بسیار بیشتر و کثیری هستن. حاج آقای فاطمی مقدم هم که دیگه دم در معرفیشون کردم اومده اینور نشسته. خب ما باه زرگر که رسیدیم فکر کردین تموم شده دیگه. ایشون بالاخره احتمالا میخواد دو جانبه کار بکنه. اینور با علما میشینه اون بر با ما هم میشینه خلاصه کارو سخت میکنن، جناب. ایشون اصلا سنگ نیست آقایشون اصلا رحمت و برکت برای مجموعه ما و حال حوزه فرهنگی و اجتماعی و مخصوصا امور مذهبی سازمان متولیش با متولیش ایشون هستن و انصافا هم زحمات زیادی میکشن. در واقع ایشون عالم هستند شیعه هستند بلوچ هستند و منطقه آزادی هم هستند هر آنچه جرم که تو این استان بوده همه رو با همیشون دارن خلاصه بر حالال با پاسخ عمل کرده همه باشن. کارشون از همه سختره ما منطقازادی همیشه متهمی اما جا در جایگاه متهم حضور داریم. آی فااطمی مقدمم چون با ما میشه یه خلاصه جز متهمیم باشد هی کردن از ما هم برایشون خلاص زحمات و درد سرهای خیلی زیادی داره که کار رو ایشون سخت میکنه در هر صورت به عنوان برحال یک آدم بزرگ مذهبی برحال آشنای به مسائل همیشه ما رو رهنمود میدن و کمک میکنن که در مجموعه بتونیم خیلی خطا نریم خطا حتما میریم دیگه خیلی خطا نریم میکنیم <تصفيق> البته ما بعدا باید سوال بکنیم شون چرا اومده این بر نفوذی نشسته شاد نفوزی ماست ما متوجه نیستیم در هر صورت این دو تا رئیس دانشگاه داریم ما. دو تا دانشگاه داریم که حضور ندارن تو جلسینیم هم دعوت نشدن یا آیا روش دعوت کردین نیستن آقای بزرگ زده که دانشگاه علم کاربردیمون هستن دانشگاه بین النمللی هم اعضای شکامن که در واقع حضور ندارن ما در حوزه آموزش یک پکیج آموزشی داریم از جای دانشگاه بین المللی داریم یه دانشگاه علم کاربردی داریم یه دبیرستان داریم و یه مجموعه ای از فضاهای آموزشی خوابگاهی و در واقع آموزشی و کارگاهی اینا مستقل از نظر خود اینا خودشون چون دانشگاه هستن هی منایی داره میشن و در واقع مستقیما با شخص خود من مستقیما با مدیرانم. بله و مجموعه این کامپلکس کامپلکس در واقع آموزشی رو ما تبدیل کردیم به یک منطقه ویژه علم و فناوری که دیروز آقای دکتر صدری افتتاح اولین پردیس پارک علم و فناوری در منظور داشتن حالا امیدوارم فرصتی باشه گزرا ازش در موقع خدمت شما هم خیلی بود باعث کرد. ا هم در آموزشی خوبی فراهم شده دو تا ساختمان آموزشی خوب دارید تقریبا 5600 متر فضای آموزشی جدید امسال ساختمان نیمه کاری بوده که تمام کردیم اضافه شده و مجموعه دبیرستان در همین مجموعه است مجموعه ارغودخار اردمون هست, هست. یه مدرسه عالی هنر سال گذشته شروع کرد اونجا برای مهارت آموزی فقط در حوزه هنر و صنایع دستی که اولین دپارتمانش طراحی و دوخت لباس بوده که اونا شروع به کار کرده و دپارتمان‌های دیگه رو به اختزایی که علاقه علاقه‌مند باشن خودشون یاد راه اندازی کنن ما بستر رو امکانات رو فراهم کردیم اون تا دیگه مسئولیت اجرا رو به عهده زیر ساخت در اختیارشون میذاریم خودشون بچرم زیر ساخت رو ما مهیا کنیم کار اجرا رو خودشون انجام میدن خدمت شما عرض بکنم که در حوزه ورزش همون اسکلرمه سالن 2000 نفره که از قبل نیمه تمام بود تمام کردیم بهره شده با اون دهکله ورزشیه 40 هکتاری ما هم در همون سایت پیش بینی شده من در بازی توضیح خواهم داد که مجموعه پارک منطقه ویژه مفنناوریمون سایت‌های اقامتی خوابگاه خوابگاهی دانشگاهیمون و مجموعه ورزشمون در یک پیکر جانمایی شدن که فعالیت‌های مربوط به حوزه جوانان هستن و در واقع یک ترین بخار بخار بشه. این مجموعی از اقدامات و کارهایی هست که انجام دادیم اما ام یک در واقع تکملهی رو میخوام به این موضوع بگم که همه این اتفاقات که داره میفته آجا در چابه می‌افتد که امروز استراتژیک ترین بندر منطقه است امروز به دلیل مناسبات المللی که در دنیا وجود داره امریکایی که نوجوان مردانه میاد ایران رو تحریم میکنه چابهار رو میگه از تحریم مستثنا است چرا میگوید چابهار از مستثنا است به دلیل اینکه چابهار یک بازیگر قوی در دیپلماسی اقتصادی منطقه است به دلیل اینکه کمکاری و تعطیلی چابهار به معنای برهم زدن مناسبات اقتصادی منطقه است به دلیل این هست که اگر چابهار کمرنگ بشود چین در گوادر ای به دست پیدا خواهد کرد که فردا روز حتما و حتما سایر حال بازیگران اقتصادی منطقه جایی محلی برای حضور نخواهند داشت بنابراین باید چابهار ها پیدا بکند این یک الزام اقتصادی بین است و, و این الزام رو خوشبختانه مقام معظم رهبری دو دهه پیش با انایت دادن، انایتی که داشتن به توجه دادن به توسعه سواحل مکران تکلیف کردن از دولت قبل و در این دولت هم جنابای روحانی با اون نگاه استراتژیکی که نسبت به مسائل امنیت منطقه داشته تأکید جدی از ابتدای دولت داشتم امروز چابهار در یک نقطهی قرار گرفته جاقا که سه بازار مهم منطقه دنیا رو به هم وصل میکنه آسیای میانه و خدمت شما عرض بکنم روسیه و شرق اروپا آفریقا و جنوب شرق و آسیا سه تا بازار مهمی که تقریبا بیش از نه درصد مبادلات دنیا بهترین مسیر عملش از این قسمت هست یعنی اینکه ما اگر فقط سه درصد از اون جدول چیز رو بیارید برای من عمل کرده یه جدول دیگه داریم آخرین با. تولید کل جمعیت بازارهای هدفی که از چابهار میتونن عمل بکنن 42 درصد جمعیت جهانن مبادلات کشورهایی که بهترین مسیر عبورشون از طریق چابهار هست 540 میلیارد دلار از کل مبادلات دنیا بهترین مسیرش در واقع امکان حضورش از سمت چابهار هست یعنی 3 درصد کل مبادلات کشورهای هدف رو اگر ما بخوایم هدف گذاری بکنیم اگر ما فقط سی درصد از این بهترین مسیر رو انتخاب بکنیم 162 میلیارد دلار میشه 162 و شست و دو میلیارد دولار براساس کانتینر و باری که دارند سه و دهم میلیون کانتینر در سال میشه الان در چابهار سی هزار کانتینر عمل میشه یعنی یک درصد هدف گذاری یعنی اینکه تقریبا بر اساس هایی که انجام میشه شغلی که از طریق چابهار می میتواند برای شرق کشور ایجاد بشود 3.2 میلیون فرصت شغلی اگر ما بتونیم همین ظرفیته یعنی 3 درصد آن چیزی را که می توانیم عمل بکنیم 3.2 میلیون شغل در شرق کشور ایجاد میکنیم برای اینکه بتوانیم عمل بکنیم مجموعه ای از الزامات رو می خواهیم اون الزامات راهن هست این که ما میگوییم را آهن از نان شب برای استان سیستان و بلوچستان و اتصالش به سرخس واجب تر هست این هست آقا. مسیرهای ترانزیتی که امروز در دنیا داره اتفاق میفته مبانی همه این مباحثی که چابه ها رو استراتژیک کرده فقط یک چیز هست قیمت تمام شده کالا امروز رقابت در دنیا به قوارهی رسیده که در هوزه تکنولوژی، در حوزه نیروی کار، در حوزه مواد اولیه تقریبا قیمت به هم نزدیک شدن یعنی کالایی که داره دو تا کارخونه رقیب با هم تولید میکنن قیمت تمام شده هاشون خیلی به هم نزدیکه در هوزه مواد اولیه و حال تکنولوژی و نیروی و کار و همه اینها یک چیز اینها رو متمایز میکنه هزینه حمل به همین دلیل هست که رئیس جمهور چین به عنوان ابتکار خودش به عنوان در واقع بزرگترین برگی که داره در اقتصاد دنیا که میخواد در, هزار در دو هزار و 2030 به عنوان قدرت برتر دنیا در واقع حضور بشه ابزاری که فکر کرده اون رو به این 23 میرسونه فقط جاده است دبلتان زود اینیشیتیو ابتکار جاده و کمربند اونها میدانند که تنها چیزی که اونها رو داره نجات میده اقتصادشون رو و اونها رو قدرت میده که این که به جایگاه اول دنیا برسن این هست که بتونن خودشون رو در سریعترین زمان و کمترین هزینه اتصال بکنند ویژگی جمهوری اسلامی ایران هم در این بخش از جغرافیای جهان قلب جهان هست بازارهای اصلی رو به بهترین نحو ممکن میتونه به هم ارتباط بده و نقطه اتصال اصلی نقطه اتصالی که میتونه این پیوندها رو برقرار بکنه چابهار هست این هست که امروز چابهار اهمیت پیدا کرده و ما برای بهره گیری از این اهمیت باید همه تلاش و حمت اون رو به کار بگیریم آنچه که به سازمان منطقه آزاد چابهار مربوط می شود در درون مجموعه خدمتون ارشد کردم آقا ها. مجموعه هایی هست که بر حال دوستان زحمت کشیدن فعالیت ها و کارهایی که انجام شده اما در با سایر دستگاه ها و وزارت خونه هایی که مأموریت دارن در اینجا وزارت راه و شهرسازی به صورت خاص خاص بیشترین ارتباط و نیاز رو ما باشون داریم که الحمدلله بسیار مناسبات خوبی امروز در حوزه وزارت راه شهرسازی به دلیل اینکه جناب آقای دکتر اسلامی قبلا اینجا دبیر ستاد توسعه سواحل مکران بودن و اشراف کاملی به موضوعات دارن بسیار مناسبات خوبی است و طرح توسعه منطقه هم که داره در واقع عملیاتی میشه برای حل تمام این موضوعات و معضلات با هم دیگر هست تعامل همافزایی یک پارچگی در نظام مدیریت و در واقع همفزایی بین مدیران شهری و مدیران دولتی و حاکمیتی در منطقه رمز موفقیت چابهار هست که من بسیار خوشحالم و افتخار می کنم که امروز در جمع مدیران چابهار تقریب با اطمینان میتونم بگم با هیچ مدیری و هیچ دستگاهی ما هیچ در واقع چالش و اختلاف نظر و عقیده‌ای در عمل به مأموریت‌های ملی که نظام برای ما در چابهار تعریف کرده نداریم و خوشبختانه با تمام قدرت پیش می‌بریم جناب آقای بامری به عنوان فرماندار بی‌نظیر در واقع چابار چون انم که میگم بی‌نظیر به دلیلی که من 5 تا تجربه کردم از روزی که من مدیر اینجا شدم آقای بامری پنجمین فرموندارن که به مجموعه تشریف آوردن آقای محبتی شروعش بودن تشریف فرردن برگشتن به عنوان آقای استاندار و آقای بامری خدمت هستیم نگاه تعاملی هم افسایی هم راهی پشتیبانی و حمایتی که دارن سایر دستگاه‌های اجرایی دستگاه‌های نظامی انتظامی امنیتی دستگاه نظامی همیشه با مناطق قازاد دعوا بودند به جرات میتونم بگم این اولین باری هست دوستان هم میتونن در واقع شهادت بدم بررسی بکنن که ما با دستگاه نظامی انتظامی امنیتی هم اختلافی وجود نداره و مسئلهی نداریم دلیلش هم فقط یه چیز هست هدف ما مشترک هست هدف ما توسعه چابهار هست هدف ما تحقق مهموریت های نظام هست همه ما هم در واقع کارگزاران نظام هستیم در چابهار و به دلیل اینکه که ما از جانب ما من این رو عرض می میکنم به همه دوستانم گفتم این قدم از جانب ما شروع شده ما آغازگرش بودیم شفافیت در سیستممون رو به قدری زیاد کردیم که هر کسی وارد میشه جایگاهش شنش و در واقع مناسباتش و ارتباطش با سیستم ما مشخص هست به همین دلیل کمتر در واقع هاشیه و مسئله ایجاد کردیم یعنی ایجاد شده و خوشبختانه این هم افسایه باعث شده که امروز ما با عمل کرده از درآمدهای های هفت برابری صحبت بکنیم از عمران های ده برابری صحبت بکنیم از حوزه خدمات اجتماعی و کمک به جوامع محلی در ای که در واقع سابقه و تجربهش نبوده صحبت بکنیم در حد گفت و گفتمان این چیزی هست که من میتونم خدمت شما بگم حتما خیلی قصور بوده از زحمات همکارانم شاد به درستی نا توستم خدمتتون گزارش راه بکنم از همه شون نسخه ای می با توجهی که می خايم بخشی از این حرف رو که ما زدیم در میدان هم ببینیم از راهنمودهای جناب تا اینجا استفاده می و بعد هم بعد از فرمایشات جناب بازدید رو خدمت شما خواهیم بود بر اساس که تنظیم شده برکت سقواتی بر محمد و آل محمد به استقبال فرماشاته